امروز صبح زود از خواب بیدار شدم. نامهای برای مادرم نوشتم. حرفهای زیادی داشتم اما همه را ننوشتم. از مهمانان که هنوز خواب بودند عذرخواهی کردم و سوار اولین ترن شدم. سرانجام از ایستگاه یاماموتو به سمت پل یوکا ازم شدم که قبلا پیاده آنجا رفته بودم. فاصله بین آنها حدود سه کیلومتر بود. وضعیت خرابه ها نسبت به دیروز تغییر چندانی نکرده بود. افرادی اینجا و آنجا در حال جستجوی استخوان بودند. وقتی فکر میکردی به جلو خم شدهاند قدر راست میکردند و باز دوباره به جلو خم می شدند. این کار شبیه تصویر ضد نور ماهیگیری در جذر بود. وقتی در حال گذشتن از پل یکوگواوا نگاه کردم، اسبی که روز ششم زیر پل سوخته و بدنش میلرزید اکنون کاملا استخان شده بود. در پایین دست آن دو نفر که ظاهرا پدر و فرزند بودند، حلبی را به شکل قیف درآورده و با آن آب برمی‌داشتند در قسمت بالادست پل نیز دو زن میانسال ورق حلب را کچ کرده و به شکلی شبیه قبلی ها در حال برداشتن آب بودند دو زن بعد از مدتی آب برداشتن انگار خسته شده باشند به تخت سنگ ها تکیه دادند این افراد تکیه‌های خیزران یا چوب‌های را درون سوراخ‌های تخت سنگ ها فرو می‌کردند و با قرار دادن ورق‌های حلبی الوار و حسیر بر آنها سخفی برای محافظت از برف و باران برای خود میساختند. ساختند. در قسمتهای بالا دست رودخانه هم چند تا از این آلونکهای محقر دیده میشد. وقتی به شهرک سرازایا در کرانه شمالی پال آی, آی رسیدم، میان انبوه تک سفالهای انباشته بر هم دو زن نشسته بودند و حق حق گریه می کردند. هر دو تقریبا بیست ساله بودند و خواهر به نظر می رسیدند ساختمان نمایشگاه تولیدات و ساختمان معسسه حمایت از صنایع از بالا به پایین در هم شکست و ریخته بود تقریباً وسط پل فلزی آی اوی به اندازه یک متر برآمده بود و آسفالت سطح پل شکافهایی مانند لاک لاک پشت را نشان میداد. این شکاف ها به عرض دو سه سانتی متر در تمام سطح پدید آمده بود لوله انتقال آب با سانتی متر قطر که در امتداد پل کشیده شده بود هم شکسته دهان باز کرده بود و داخل آن دیده می شد. آزم بخش جنوبی پل هونکاوا شدم. بر اثر جزر کف رودخانه دیده می شد. در آبی که درون گادی جمع شده بود سه چهار ماهی شبیه شاه ماهی پوسیده بودند و در حالی که استخوان پشتشان نمایان بود در آب فرو رفته بودند. اینجا و آنجا خرچنگ های مرده بودند که کم کم از لای تخت سنگ ها با حرکت آب بیرون می آمدند. های ساحل رودخانه بسیار بلند شده بودند. مانند قبل فقط الف از خانواده برنج، مانند علف هرز بند بندواش به شکل انبوه به چشم نمی آمدند. هرچه فکر می کنم نمی توانم علت این را که نور و صدا باعث شود گیاهان زیاد رشد کنند بفهمم. بر نرده های همه پل ها، های چسبیده و بر برخی از این نرده ها با زغال چوب جمعه های نوشته شده بود. در واقع تعداد آنها بسیار بیشمار بود. بر اعلامیه هم باد میوزید و در احتزاز بودند. افراد زیادی این را مانند اعلامیه روزنامه با دقت نگاه میکردند. به ندرت کسانی هم بودند که چیزی مینوشتند و دور میشدند. همگی با جملاتی بینهایت ساده نوشته شده بود. چون به آنها نگاه میکردی احساسات و موقعیت های آنها بسیار متفاوت به نظر می رسید. متن چند از اعلامیه های نرده پلهون کاوا را در دفترچه یاد داشتم نوشتم.کن به خانه امت در گی بیا پدرت پدر و مادر محل اقامتتان را اطلاع دهید شهر حدسوکا، ساکورا او نزد آقای آبه مایومی فرزندان پدر را جستجو می کنند حسوه ماتسو نزد آقای شینتاکو یا ایچی وطانا به شینزا در سلامت به سر می برد مقصد میداری نزد سباراشیگ رو نگران سلامتی دوستان و همکاران هر روز ساعت ده به اینجا میآیم، صنعتگر سطح آ اوگاوا تایزا پدر بزرگ مادر بزرگ و امیکا جایتان را نمیدانیم نزد ایداتاکورو در شهرک اوکا اوچی بیایید یاسو اوکا آقای نیشیگوچی اکو او از شهرک کامییا می‌خواهم پولی را که قرض گرفتم پس دهم محل اقامت جدیدتان را اینجا بنویسید لطفاً با معذرت همانطور که ما تلعید از شهرک ناکاهی رو. یاکو، هنگام برگشت به فوچو به میهارا سر بزن، پدرت. برای رهایی از مگس هایی که دنبالم راه افتاده بودند، در حالی که دستمالم را میچرخاندم، شروع به دویدن کردم. خیلی زود نفسم گرفت و دوباره به شکلی معمولی راه رفتم. اینجا هم بین تخت سنگها و سنگچینها را که نگاه کردم، جوانه های ترشک، ماشک های و سایر علفها ها قد کشیده خود را به جای تکیه نداده و ریخته شده بود. شاید ساختار یاخته های گیاهی هم بر اثر ضربه حمله هوایی تغییر کرده بود. چیزی را به یاد آوردم که از کارشناس کشاورزی دوره گردی شنیده بودم. در حین کشت برنج اگر آن را در آب عمیق قرار دهیم هنگام رشد وقتی به سطح آب میرسد یاخته های ساغه شکل بلندی میگیرند، ساختار ساغه را تضعیف می کنند و دلیل افتادگی و خابیدگی آنها می شوند. برای این عمل شرحی علمی وجود داشت اما این را که بر اثر ضربه جهش نور تنین صدا و حرارت رشد کنند نمی فهمیدم این دفعه رشد گیاهان و مگس ها را تسری اما به حیات انسان ها نیروی بازدارنده وارد کرد مگس ها و گیاهان رشد کرده بودند. جوانه درخت موز باغچه پشتی اودانفروشی واقع در این گذرگاه دیروز به اندازه 45 سانتی متر قد کشیده بود ساقه قبلی آن بر اثر موج انفجار از ریشه شکسته و از بین رفته و ساقه‌ای که بهتر است آن را جوانه بنامیم به, به جایش رشد کرده بود همین جوانه امروز بیش از 60 سانتی متر قد کشیده بود. این واقعیت که در طول یک روز به اندازه پانزده سانتیمتر قد بکشد حتی برای من هم که در خانواده کشاورز به دنیا آمده و به رشد درختان عادت کرده ام، شگفت انگیز است. این اودون فروشی مغازه است که به آن خو گرفته بودم. هنگام کار در کارگاه تهیه غذا و آزوغه برای نیروی زمینی یک شنبه برای خوردن شام اینجا می آمدم. صاحب آنجا هم مرا استاد صدا می زد. همین مسئله باعث شد تا هنگام کمبود مواد غذایی گهگاهی مخفیانه چیزی از اودونهای توضیعی به دست بیاورم. صاحب آن مغازه اودونی خوشمزه با تعم کاری برای خوردن به ما میداد. در حالی که این چیزها را به یاد می آوردم و با انگشت اندازه جوانهای درخت موز را محاسبه می کردم، سگ پاکوتاه اودان فروشی از سایه سنگی به من نگاه می کرد. متفاوت با همیشه امروز وقتی صدایش صدا و با دهان برایش سوت زدم به من نزدیک نشد حتی دومش را هم تکان نداد و فقط خیره به من نگاه کرد به نظر میرسید هنگام آتشسوزی به جای فرار کرده و بعد از فروکش کردن آتش برای دیدن صاحبش برگشته بود بسیار عجیب بود وسط چنین کویر ای که ذرهای هم غذا وجود نداشت می توانست زندگی کند موهای باریک و نزارش به طور کامل سیاه و خاکستری شده فکر کردم مقداری از غذای نیگیریم را به سگ بدهم. اما وقتی فکر کردم با این محبت گرفتار تعقیب سگ خواهم شد، منصرف شدم و رفتم. در آوار خانه چهار یا پنجم از محل اودان فروشی، صدای تقتق -تق چکش بلند بود. کسی با اسکنه گاف صندوقی را باز می کرد که به رنگ قهوه‌ای زنگ زده بود. مرد میانسالی بود که شورتی خاکی رنگ به پا، پیراهن نیم آستینی به همان رنگ به تن، و کلاه محافظی بر سر داشت. از روی کانچکاوی نزدیکش شدم و گفتم با اینکه که هوا گرم است خیلی تلاش میکنید. در گاوصندوق باز نمی شود. مرد که کلاه محافظ داشت نگاهی به من انداخت و بدون اینکه دست از چکش کوبیدن بردارد جواب داد. به هیچ وجه کلید در آن نمی نمیچرخد. نمیچرخد پس دارم از رو میبرمش. چرا جا کلیدی رو با پد چیزی نمیشکنی؟ چیکار کنم؟ با پد بشکنم؟ اگر سری محتویات آن را بیرون بیاورم برای شکستن گاف صندوق، دستگیر خواهم شد. مگس های زیادی که بالای کلاه ایمنی جمع شده بودند با ازدهام رقص نهنجاری انجام می دادند. به نظر نمی مرد دوست باشد. پس با گفتن مزاحم شدم محل را ترک کردم. در آوار سوخته بازار به هر طرف که رو میکردی تعداد بیشماری صندوق های فلزی زنگ زده به چشمی آمد. ما در خانه ما در شهرک سیندا گاوساندوگی نداشتیم. در همسایگی فقط آقای ناکاو و آقای میاچی گاوساندوخ داشتند. وقتی آوار سوخته را دیدم برای اولین بار این مسئله را فهمیدم. در مورد آقای میاچی به نظر می رسد بعد از آنکه هواپیماهای دشمن پس از نیمه ماه ژوئیه امسال در آسمان هیروشیما پرواز کردند از رشته کوه چوگوکو گذشتند و بر دریای ژاپن مینهای بیشمار ریختند آن را خریده باشند. بعد از آن واقعه، کسانی که برای سیاست پراکندگی به روستاها رفتن زیاد بودند و چیزهای قابل فروش مانند پیانو، آکاردئون و گاف صندوق به قیمت ارزان فروخته می شد. بعد از نیمه ماه ژوئیه آمدن هواپیماهای دشمن برای بمباران به شکل غیرقابل انتظاری زیاد و منجر به اعلانهای خطر حمله هوایی در توکویاما، ایواکونی و کوره شد. وقتی هواپیماها برای پرتاب مین به دریای ژاپن آمدند علاوه بر پیانو و گافسندق چیزهایی مانند جارختی، گلدان خیزران شورو چوب ماهیگیری خیزرانی بونسای، تابلو، چوب رختشویی، لگن دستشویی، راکت و خمره های اتیقه بسیار ارزان به فروش گذاشته شد شهر ایروشیما شهر نیروی زمینی و شهر کوره شهر نیروی دریایی نامیده میشوند. کوره در بیست و دوم ماه جوان مورد حمله هوایی و در روز اول ماه ژوئیه با بمب‌های آتشسا مورد حمله بزرگ قرار گرفت که بیشتر قسمتهای هموار شهر در آن سوختند. در روز بیست و چهار ماه ژوئیه بار دیگر به کوره حمله هوایی شد. ناوهای جنگی ژاپن که در این زمان در جزیری جایی مخفی شده بودند به علت کمبود روغن سنگین در حالتی ساکن با ضد هوایی به مقابله پرداختند. تولید روغن ریشه کاج نتوانست جایگزینی برای روغن سنگین شود پس در حالی که توانایی جنگیدن داشتند مجبور به لنگر انداختن شدند در روز 24ام ماه ژوئیه هواپیماهای دشمن تا آسمان اوجینا آمدند و بمب‌هایشان را انداختند بعد از آن حمله هوایی روز ششم ماه اوت هیروشیما بود که با بمب‌های ناشناخته صورت گرفت و همه شهر سو. این که چنین بمب وحشتناکی در دنیا هست چیزی بود که ما نشنیده، نه فکرش را کرده و نه دیده بودیم، بیشتر افراد اینطور بودند. کودکان صادقند، پس بهتر بود آن وضعیت را ببینند. دانش آموزان دوره راهنمایی گروه داد که یک باره در بم مردند تا روز پنجم ماه اوت مثل هر روز در برنامه پراکندگی کمک می کردند. به هر چهره ای که نگاه میکردی رنگی از فرار، و مخفی شدن در آن نبود دختران دانش آموز گروه خدمات پیشانی بندی بسته و بازو بندی با عبارت گروهان دانش آموزی خدمات به بازو پیچیده بودند آنها با همخانی سرود دانش آموزان متحد به محل کارخانه فولاد رفت و آمد می کردند تو تفنگ به دست گیر ما چک برای جنگیدن فرقی نیست خال سانه جان می ده. این است چهره ما دانش آموزان. در محل کارخانه فولاد این دختران دانش آموز به عنوان تراشکار گلوله های زده هوایی را تراش می دادند. در نظام شیفتی ظاهرا گروه متاخرتر تا ساعت ده شب گلوله ها را تراش می داد. هیچ کدام در خیالشان هم نمی دیدند که بمبی مانند این انداخته شود.